سوره مبارکه دخان این سوره هم سوره 64 می سوره هست یعنی بعد از سوره زخرف نازل شد در سوره های مکی سوره های مکی تقریبا 85 تا سوره هستند بعد از 86م در مدینه نازل شدند تقریبا اینها همه سوره ها در وسط زندگی مکی نازل شدند ولی حواشی همین به ترتیب هستند و این سوره در سوره دخان میگویم تسمیت کل به اسم الجز چون در بحشی از این سوره دخان آمده اما مراد از دخان چی هست همون جا عرض رب این سوره در سوره زخرو که شبه پاسخ داده شد که غیر از خداون کسی مالک کسی مالک در محضر خداونه هیچ کس مالک شفاعت نیست مگر به اجازه نام برای کسانی که اهل توحید و اهل ایمان باشد حال شبای دیگر اون شبای دیگه اینه که مشرکین میگفتن اگر اینهایی که ما صداشون میزنیم سفارش ما نمی کنن یا بکنند حداقل صدای ما رو میشنوند صدای ما رو بشنواد الان اگر سفارش بکنند چه بیتر اگر نکنند هم ضرر نکردیم انها را صدا زدید خدا من می فران نخیر صدای شما را هم نمی شنبت. از حال شما هم خبر ندارد چرا سیغی حسن اینهو هو السمیع العلیم اون ذاتی که فقط او میشنود و او می دانه ذات پروردگار از اینها نمیشنود. شنود لذا بی خود زائع نکنید وقتتون ربی خود نهارا صدا نزنید شما پروردگار را فریاد بزنید در این سوره هم ابتدا تمهیر همراه با ترغیب است تخویف دنیوی و اخروی و بشارت اخروی هست در وسط یک دلیل عقلی بر تورید است و ما خلق والا دیر بیشتر تو این سوره تخویف و تباشیر این سوره تخویف و و اجل کتاب المبين الله اعلم بمراديه والکتاب المبين خداوند عزوجل به کتاب مبين سوگند دیاد کرده یعنی خود قرآن را شاهد گرفته این کتاب شاهد است جواب قسم چیه ما باقی موضع و شبهه قسم بین کتاب که جای شبهه باقی نیست هیچ شک نمانده یعنی این اینقدر خداوند خودی دلائل قرآن شاہد که کہ خداول انقادر دلائل را محکم بیان کردن انقادر واضح بیان کردن که هیچ جای شکی باقی نماغیر بلی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ همانا این قرآن را ما نازل کردن در شب مبارکی در شب مبارکی, در شب مبارکی إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إن حكمت <تصفحك> إنزالست إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ همانا ما بيم دهندهس إن كساني كنفزيرن هنهارا أز عذاب خدا بيم می دهين ببينت مرادا شب چيه خدا ونفهمه ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ان شبه كي شب تقسيم مشهه و نوشته میشه بسیار از مفصلین گفتن یفرق یعنی یکت یعنی مدارک گفته در آن شب نوشته میشه یا تقسیم میشه کله امر حکیم هر امر محکم یعنی هر دستوری که قطعی از و باید بهش عمل بشه اتفاق بیفته در همان شب نوشته میشه و میشه امر من عندنا امری که از زانبه ما واشا اینا کننا مرسلین در شب مامی فلسطین خرشتگان را ببین جمهور اعتقاد دارد که مراد از این شب شبه قدر است مراد از این شب چیه؟ شبه قدر است این دیگه زیاد پیچیده نیست چون خداوند عز جل قرآن را در ماه رمضان نازل کرده شهر رمضان الذي انزل في القران و قرآن را در شب قدر نازل کرده اِنَّا انزلناه في لیلتِ القدر اما بعضی معتقدا که مراد از این شب نیمه شعبان است که در اصطلاح میگویند شب برات لیل اپن نصف من شعبان چون در ایک سری هاي هایی هست در باره نیمه شعبان که فضائلی ذکر شده درباره اون فضائل گرد چه روایت زیفی هست که در نیمه شعبان همی چیز تقسیم میشین جا همست پی ها یوفرق و کلو امر حکیم لذا میگویند هر چیز تقضیم میشه تقدیر اونجا مشخص میشه عمر انسان رزق انسان همه پس نیمه شعبان هست بنده ارز میکنم که مراد از لیلت المبارکه لیلت المبارکه نیمه شعبان نیست چرا؟ به دليل که روایت هایی که در باره نیمه شعبان آمده اون روایت ها ضعیف است. در نیمه شعبان عبادت خاصی که مردم انجام بدن که تو شبهای دیگه هست نیست نان عبادت که اون عبادت در شبهای دیگه نباشه. اوراد خاصی وظائف خاصی کسی اگر بخواد عبادت کند همه شبها عبادت بکند اما عبادت خاصی وجود ندارد إن آيات داشتبه شيء قال أبو بكر ابن العربي وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر إن شاب شابي قدر ومنهم من قال أنها ليلة النصف من شعبان بازي قفتني من شعبان وهو باطل اللامة قرطبيني وهو باطل ترى لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نیمه شعبان, شعب... شعبان در شعبان است در رمضان نیست و بعد در ایرام قرطبی می فرمد و ليس فی نصف من شعبان حديث یعویلو عليه. حدیثی که مورد اعتماد باشه حدیثی که واقعا بیون حدیث انسان دل ببنده چون قوی باشد چنین حدیثی نیست لا في فضلها ولا في نسخ الاجل نه درباره فضیلت اون شب و نه درباره اینکه اجلها و عمر انسانها تو اون شب نشتی میشه چنان حدیث قوی وجود نداره فلا تلتفیتو الیها پس بر به این توجه نکن پس مراد نیمه شعبان نیست مراجی لیل تو قدر است. از کدام جمهور بالیناکی دارستم؟ البته یک اشکالی هست که آیاتی که ناظر شدند و اولین آیاتی که برآن حضرت فرول آمدند، آیات سوره علق هستم پنج آیه اول اقرأ بسم ربکال الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکال اكرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تاجا این آیات نازل شد و این آیات در غار نازل شدن در شوال نازل شدند این آیات در سی نازل شدن در شوال بس چطور می که این نازل ناقیللت این مبارکه در رمضان است، در شریف قدر است در حالی که این در شوال نازل شد جوابش اینه بعضی معتقدند که این که ما قرآن را ناظر کردیم در شب مبارکه از لاه محفوظ به سماي دنيا است یک باره یک شب خداوند نازل کرد اینجا در آسمان دنيا و از آسمان دنيا باز جبرائيل کم کم تدریجا بر آن حضرت صل الله عليه وسلم وحی کردو القامی فرمودو. پس مراد نزول از روح محفوظ به سماع دنیا است. یک تفسیری دیگه شاید همون آیات علق که اولین آیات هستند اینها در همون شب قدر بر رسول الله نازل شدند در شب بیست و هفتم چون بیشتر احتمال بیست و هفتم است ولی آن حضرت چند روز بعد به مردم اعلام کردند در شوال اعلام کردند چون سه روز بعد از اون شوال میشه در شوال اعلام کردن مردم فکر کردن که الان نازل شده بعضی این توجیر هم آوردم الان ای حال ببینید تقادیر و مقادیر همه بندگان نوشته شده اینجا هست فیها یفرق و کل و حکیم هر امر محکم اونجا نوشته شده این از قبل نوشته شده در لوح محفوظ عمر انسان ها انسانها انسان ها سعادت و شقاوت انسان ها این مریض میشه او سالم میشه اون مریض میشه این سالم میشه این پادشاه میاد گدا میشه این گدا میره پادشاه میشه خلاصه یکی که بر تخت میشینه یکی سرنگون میشه همه اینها تا قیامت هر اتفاقی میفته در لوح محفوظ است اما در شب قدر اینها به فرشتگان فرشتگانی که معموریت دارند در طول سال وظائفشون ماموریتشون در یک سال بهشون محول میشه بهشون سپرده میشه متوجه شدید مثلا کسی که شما معمولیش کردید ماموریت میده فلان روز فلان جا برو فلان روز فلان کار بکن فلان روز این دستور را به بیار چند مدت معمولیتش را بهش میده و منویسه به تحویل میده پس همه تقادیر و مقادیر در لوح محفوظ نوشته شده در این شب تقادیری یک سال رزق یک سال عرض کنم حوادث یک سال افتفاقات یک سال موت و حیات یک سال به بفرشتگان داده میشه اونها برای یک سال چکنم؟ در شب قدر اونها باز میایند و اجرا می کنند فرمدبرات امره اموری که به اونها سپرده شده چی میکنند؟ کنند؟ تدبیر می کنند بر نامزی زنی این، پس در اون شب به این معنا هست که فیها یفرق کل امر حکیم، هر امر محکم محکم یعنی اونی که قابل نسخ نیست، قابل تغییر نیست، قطعی است. اون در اون شب نوشته میشه و تقسیم کار میشه. امرا من این دنا آمری که از جانی ما باشد. این نکونم مسلمین همانا ما این فرستادگان کی می فرستگان را رحمت من ربکا این رحمت مفقول مفقول لهو حسب رسولی می فرستیم برای چی می فرستیم به چه منظور به چه اولاد به خاطر رحمتی که از جانی برام یعنی فرستادن فرستگان به رحمت پروردگار اینها میایند برای شما بارانها میارند، میاران میاران و اولاد میاران برکات میارند. انهو هو السمیع العليم همانا فقط اون ذات از هر چیز را شنبا و هر چیز را دارا بغیر از پروردگار کسی نیست رب السماوات این بدل از ربکه هست رب که که یعنی رب آسمان ها و زمین و ما بینشان این کنتم موقینین اگر شما یقین دارید و باور دارید لا اله الا هو یحی و یمید هیچ معبود او نیست ارز کردم که شرائط علوهیت چی هستن یک قدرت و تصرف کامل و مطلق ما فوق الاسباب دو علم کامل و معفو قل اسباب این هر دو وقتی که برای الله ثابت شد از غیر الله در آیات گذشته نقش شد لذا نتیجه لا اله الا هو پس کسی دیگر لایق عبادت بجزء نیست یحی و یمید او زنده می کند و اومی می راند ربکم و رب آبائکم ال اولین ذات هم رب شماس و رب پدران پیشین و اولین شماس لذا فقط او را عبادت کرید لہذا فعبدوه ولا تشرك تشرکو بیشین تفسیر تبارید بشتیم اما این دلائل امده و این کلام و بیان بلیخ که برای اونها گفته میشه بلهم فی شک یا لعبون چون در گذشته ما خاندیم که والکتاب المبین ما بقیه موضوع شبه جای شبه نماند اما این مخاطبین و این مشرکین ما که انقدر مریزند و انقدر نفهمند که هنوز اینا در شک خودشان سرگرمند بلهم فی شک یا لعبون بازی میکنند سرگرمند پس با وجود این دلائل ای محمد صلی الله علیه وسلم سلام با وجود این دلائل اینها قبول نمیکنه پس منتظر عذاب خدا باش فرتقب منتظر باش یوم تاتی سما روزی که آسمان بیارد آورد به دخان مبین دود آشکار به دخان مبین اون دودی که دودوازه و روشن است اون دود که بیاد یغش ناسا مردم را تحت پوشش قرار میدهد همه مردم زیر اون دود قرار میگیرن هاذا عذاب العلیم این یا ادخال الالهی است یا مقوله مشرکین در آن روز است این عذاب دردناک این خیلی سخت در داوری لذا اگر تسلیم نمی کنند اگر قانع نمی شمان با دلائل منتظر باش که اون عذاب بیاید عذاب به شکل دود بیاید بعد وقتی که گرفتار عذاب میشن چی میبین؟ یا قولون رب نکشف عنا العذاب اینا مؤمنون خدای این عذاب را از ما دور کنمان اینا میابرین اما انا لهم از ذکره اینا کجا پند پذیرند در بار دخان میخوام عرض کنن که مراد از دخان چیه؟ بعضی از مفسرین گفتند که یکی از علاقی قیامت است نزدیک قیامت قرب قیامت در یکی از روزها تمام دنیا رو دودی فرامی گیرد جناب دودی که برای مردم نفس کشیدن در اون روز سخته مردم وحشت می کنن اون, اون دود رو که ببینن می این عذابی خدایی است. لذا اون دود در یکی از روزها ظاهر میشه و ناقدید میشه. مراد اون دود هست این یک قول هست اما قول اکثر نیست قول جمهور نیست بیشتر مفسران معتقدن قول دوم را عزمی کنم و قول صحیح هم همینه بیشتر مفسران معتقدن که مراد از دخان و مراد از دود عذاب قحت است که بر اهل مکه آمد عذاب قحت است که بر اهل مکه آمد چطور عذاب آمد ببینید بعد از اینکه ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه حجرت کردن و مشرکین هموز به شکنجه مسلمانان ادامه میدادند و مسلمانان اونجا اسیر بودن رسول الله صلی اللہ و وسلم در مدینه در سال اول و دوم حجری دعا کردن دعا می کردن گفتن که خدا یا سالهای انها را مثل سالهای یوسف بگردان عجب. اللهم اجعل سنیهم که سنی یوسف سالهای را مثل و که حضرت یوسف در مصر بود یعنی قحت شما برای انها قحت بیار چنانچه در مکی قحت آمد هفت سال بازی میگر قحت آمد چنان قحط بود که مردم هیچی نداشتن بخورد از کنم که لاش های حیواناتی که چندین سال مرده بودن و گنگ زده بود یا استخوانهای پوسیده را اینا رو جمع می این استخانها را می کردن خود اینا رو می از بس که گروس بودند. انسان که گرسنه باشد شاید برای شما هم پیش آمده که چشمش تاریک میبیند چشماش چی میشه؟ ضعیف میشه. چشم هم زیف بیشه بعد وقتی که بیرون بری بیابان بیبینی قحط است قحط که باشد شما بینید که زمین ایک شکل دیگری زمین را احساس میکنید سیاه است رنگ زمین سیاه شده و بعض وقتی که قحط باشد، گرمی هم زیاد باشد، چشم انسان هم از گرسنگی ضعیف شده، انسان همه جره دود میبیند، غبار بیند. لذا چنین حالتی برای اهل مکه پیش آمد تا سالها گرفتار قهد بودند، مشرکین پی بردند که این خاطر دعای رسول اللہ است، اون زمان ابو صوفیان رضی الله تعالی تعالیٰ ایمان نیاورده بود از سرداران مشتقیم بود به مدینه تیبره خدمت آن حضرت التماس کرد گفت این قوم تو هستند این ها خیشواندان تو هستند نسبت با اینها ها داری دعا کن از پروردگارت بخواه که این سالها را به پایان درستانت قد تمام بشه. وقتی ابو سفیان از آن حضرت صلی اللہ علیہ کرد آن حضرت دعا کرد خدایا قحط را بفایان دلست قحط تمام شد و دواره در مکه آبادی و شادابی آمد پس مراد از دخان اون دخان است. اکثر مفسران همینو گفتند. قال عبدالله البته الصحابه عبدالله بن مسعود اینو میگه حضرت علي وعبد الله ابن عباس قول أبل رمي يعني قال عبد الله إنما كان هذا يعني اي مسألة اتفاق افتاد لأن قريش لم يستعسَت على النبي صلى الله عليه وسلم قريش وقت قوسيان كار دونافرمانكار دثمرت كار دعا عليهم بسنين كسنين يوسف رسول الله دعك بسالهاي مثل سالها يوسف فأصابهم قحط وجهد قحط و مشقت و سختی به اندازه‌ای برای مردم مکه آمد حتی اکل العظام حتی استخوان‌ها را می‌خوردند استخوان‌ها خرد می‌کردند می‌خوردند و چنان وضعیت بد بود که فی یوم زر رجل و ين... یل فجعل الرجل ينظر الى السماء یکی از آنها مثلا نگاه می‌کرد به آسمان و ما بین او و بینها که دخان من الجح از بس که ضعف بود و سخت بود زندگی بین خودش و بین آسمان همش دود میدید دید چشما ضعیب شده بود پس الله می فرماید اگر اینها با دلیل تسلیم نمی با دلائل غانه نمی منتظر باش که عذاب خدا بیاید اون عذاب چیه؟ یوم تقت سماه و بدخان مبین روزی که آسمان بیاورد دود کار را یغشن ناس دودی که همه مردم را تحت پوشش قرار بیدار هذا عذاب علیم اون وقت مشرکان میگوین این یا مکول مشرکان است یا ادخال ایلیز یا الله میفرمد این دود عذاب در ناکست وقتی که اون عذاب بیایت چی میگوین یا قولون رب نکشف عن العذاب بار الاد دور بگردان از ما عذاب را انا مؤمنون همانا آما ایمان میاورین اما پروردگار تقزیم می کند انا لو مذکرا از کجاز برای آنان پاند موعز تذکر و قد جاہم رسول مبین در حالی که پیش انها رسول مبین رسولی که آشکار و شفاف و واضح حیام خدا رو بی انها می اون رسول آمد بازم انها ایمان نیاوردن ثم تولوا عنه سپس از اون رسول اعراض کردن و قالوا معلم مجنون چه گفتن؟ گفتن آموزش دیده هست معلم یعنی تعلیم یافته آموزش داده شده استادی دارد که او را تعلیم میده و دوم دو توهین دوم مجنون او را دیوانه میگفتن خداوند عز و جل میفرماید ما عذاب را دور کردیم ولی شما هم ایمان هم اعاده میکنین بکوف. اینا کاش کل عذاب قليلا ما برای مدتی برای لحظه عذاب و دور میکنن که ما عایدون شما عادت میکنید. شما یعنی به شرک، به خرافات برنگرید. یوم النبطش الباطشات الكبرى روزی که ما گرفتار میکنیم میگین گرفت بزرگ. گرفت بزرگ بیشتر گفتن بدر هست و معرکه بدر و کشتار مشرکان در بدر و بعضی بقیه عذابهای که بر برونها آورد شکستهای پیابی و بلو خصوص فتح مکه اینا منتقیمون همان ما انتقام گیرنده هستی ما از شما انتقام میگیریم. ولا فَتَنَّا فتن قَبْلَهُمْ قَوْمَ قوم فرعون رَسُولٌ كَرِيمٌ خدا واند تعالی یک نمونه استخوی فی بیان می یک نمونه استخوی فی بیان می فرمایت در آخر باید وجه شبه را بگویم ولی بند افقدان ارز می کنم تا وقتی که شما آیات را می خانید به این موارد دقت مکنید قبلا هم گفتم در درس دیروزم عرض کردم وضعیت رسول الله با وضعیت موسی سلام الصلاه بسیار شباهت دارد و شرایط اهل مکه با شرایط اهل مصر که به موسی ایمان نیاوردن هم بسیار مشابهت دارد حال خدای تعالی ایک نمونه ذکر می کند که همان گونه که برای بنی اسرائیل پیامبری آمد برای شما هم پیامبری آمد بنی اسرائیل هم انکار کردن شما هم انکار کرد. ببینید چند صورت هستند که اہل شرائط اہل مصر بنی اسرائیل با شرایط اهل مکه هم خواهی یک همان گونه که خداونده از و جل بلی اسرائیل را نجات داد از فرعون و فرعون را غرق کرد به عذاب گرفتار دار کرد همانطور خدا تعالی صحابه را یاران رسول الله را مؤمنین را از دست این فرعون های مکه و بالخصوص فرعون این امت ابو جهل از دست اون نجاب داد و همانطور که فرعون اونجا غرق شد ابو جهل هم در بقشت کبرا کشته شد و از پای دران این یک مشابهت و نمونه دوم خدای تعالی بنی اسرائیل را انتخاب کرد برای قیادت و هدایت امت و رساندن پیام الهی بی جهانیان و ان هر فزیلت هم داد و انی فضلتكم على العالمین یا بني اسرائيل اصدر اسر نعمتي التي انعمتو عليكم و انی فضلتكم على العالمین همچنی یاران رسول اللہ را کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف اونها هم در اون زمان خودشون بهترین ها بودن اینها هم در زمان خودشون بهترین ها اما صحابه رسول الله مطلقا بهترین است. سوم بعد از این مرحله بعد از مرحله نجات خداوند انعامات زیادی به بنی اسرائیل داد چه انعامات این انعام؟ ها داد من داد سلوه داد ظللنا عليهم الغمام ابداب ابداب هر که اونها نیاز داشتند خداوند به بنی اسرائیل داد هرچینی بعد از اینکه خداوند صحابه رسول الله نجات داد نعمت‌های زیادی داد فتوحات داد غنایم داد ملک داد ثروت و سرمایه داد به صحابه هم هم همین چیز داد پس ببینید این نمونه که بیان شده در این نمونه با هم دیگه چی داره؟ مشابهت داره اما نکته آخر که باید خدمت شما عرض بکنم، بنی اسرائیل ناقدری کرد اما یاران رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قدردان بودن و تا آخرین قدری خون در کنار رسول الله بود با دشمنان جنگیدند، خون دادند جان دادن، دادند، مال دادند. از هیچ فداکاری دریغ نکردند ابر قدرت را از در و تمام اقوام را شکست دادند شهرها و بلاد را فتح کردند اما بن اسرائیل را موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود برین بی جنگیم گفت که اذهب انت و ربک فقاتل اینا ها از اینجاست که فرق معلوم میشه و اگر بیشتر میخواهید فرق را بدونی آیات متعددی از قرآن را نگاه کن. آنها را خداوند میفرماید بنی اسرائیل نتیجش و ضربت علیهم الذله و وباء بغضب من الله ذلک بانهم كانوا یكفرون بآیات الله و یقتلون النبین بغیر الحق در طول تاریخ خیانت و جنایت کردند أما صحابي ربهم أولئك هم المفلحون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى رضي الله عنهم ورضوا عنهم شرات هدى زيشون تعريف بس إن منحس نمني أستخويق ولقد فتلنا قبلهم قوم فرعون همانا ما آزمودیم قبل از اینها قبل از قریش مکه قوم فرعون را وجاءهم رسول کریم بیش آنان رسول معزز آماد رسول معزز آماد فی موسیٰ علیہ السلام شی مطالبی کل از فرعون ان ادو الی عباد الله اینکه این ان ادو الی عباد الله دوتا تخصیل حس برایش یکی اینکی ای فرعون بندگان خدا را ادا بکن یعنی بیمان بسوار رسالت موسیٰ یکی تویید بود و یکی آزاری و نجات بلی اسرائیل از چنگال فرعون ان ارسل معي بني اسرائيل فس أن أدو إليه عباد الله مالاش إذا كان أدو خطاب بفرعون فرعون ينحس مرادس إليه عباد الله بل إسرائيل أطلقوهم وسلموهم إليه أي فرعون وإلى شكري فرعون إن بل إسرائيل رأعزاق كنيت وبمن تسليم كنيت و المورد بهم بنو اسرائیل کان فرعون مستعبد هم فرعون انها را به عبدیت و به بردنی کردند. سخوت انها به من بسم الله. تفسیر دوم اینکه اینجا خطاب به بندگان است. ادو الی عباد الله یعنی ادو حق الله و قبول الدعوة یا عباد الله ای بندگان خدا حق خدا را ادا کنید دستورات خدا را اجرا کنید می همه گفت هم به بنی هم به قبطیا الله می فرماید ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین ان الا تس ما ما منبر شما رسول امین هستم و الا تعلو علی و اینکه شما سرکشی نکنید بر خداوان یعنی در محظر خداوند خودتون را بزرگ نپندارید تکبر نکنید غرور نشان ندهید اینی آتیکم بسلطان مبین همان آمد موسی پیش شما آمدم بعد مدرک آشکار مدرک آشکار چیه؟ عصاب و ید بیضاب و و اینی عدت بربی و ربکم انتر جمون اینجا اندماج است یا ادماج اصطلاحی خاندید شما در مقدمه معنی اینه که القصه السیاق و سباق شما میفهمید که وقتی موسا تبلیغ کرد وقتی موسا انها را از سرکشی و استکبار باز داشت خب انها با موسا درگیر شدند با موسا که درگیر شد موسا را به قاتل تهدید کردن گفتن ما تو را می کوشی. وقتی که گفتم ما تو را موسیٰ صلی اللہ علیہ به خدا پناه و اینی عذتو بربی و ربکم ان ترجمون من پناه بردم ربم و رب شما از اینکه شما مرا چی بکنید بکشید یا مرا سنگسار بکنید و این لم تؤمنوا لی فعتزلون وقتی که او را تحرید بیت کرده این تحرید ها نیست ذکر در آیتی دیگه پس اندواج همینه که ایک بخش نیست ولی از سیاق و سباق فهمیده میشه لیسا موسا گفت لی اگر به من ایمان نمی آوری خو از من کنار بکشید راه من باز کنید اما انها ام نکنید موسا صلی اللہ دست به دعا برداشت نا امید شد فدعا ربه ان هاولئی قوم مجرمون فریازد رب بشرا صدا زد رب بشرا رب ان هاولئی همانا انها قومی هستن جرائم پیشه کارشن جرم هست شغلشن جرم هست اجابت الهیه فأصر بعبادی لیلا بشب بندگان من رب بر انکم متبعون اما شما تحت تعقیب قرار می گیرید متباعون یعنی قوم شما میشن به تعقیب شما می, شما, می شما تحت تعقیب قرار می گیرید اونجا باید دریا مواجه شود این هم ادغام است موسی خلاصه برداشت رفت اونجا به دریا برخورد کردن دریای قلظوم بنی اسرائیل گفت موسی ما دستگیر شدیم چیکار بکنیم موسی گفت نه رب با من هست همه اینها ذکر نشدند وترك البحر و بعد ادامه موسی را خداوند فرمود اثار بزن اثار زد دریا استاد موسی و بنی اسرائیل رد شدند و بعد خداوند فرمود وترك البحر الرحمن. چون موسی میخواست دریا دوباره جاری بشه تا اونها نتونن عبور کنن تا اینجای است خدا فرمود وترك البحر رحوا بزاد دریا را رهون یعنی آرام ساکن ساکت که همین که ایستاده بی ایستاده چرا؟ خداوند می "انهم این هم جند مغرکون این لشکری هستن غرق شبنده باید غرق شب باز همه اندماد شده القصه این که موسا کار نداشت همونجا منتظر باندن به بنی اسرائیل گفت الان تماشا بکنید الان ببینید که دشمن خدا را چطور خدا میزند. دشمن شما را فران با همه لشکر زد تو دریا آمدن وقتی که اولین و آخرین تو, تو دریا بودن خداوند دستور در, در دریا مطبق شد دریا برابر شد همهشون غلق شدن همهشون دستفا می زدن جان می دادن اسرائیل تماشا می کرد خلاصه همه هم اینها مقدر هستند حال الله میفرماید کن ترجو من جلاتی و عیون چه قادر گذاشتند آنها از باغات و چشمزارها و زروع و مقام کریم چه قد و چه جای معزز صاف تمام حوکا پای مجلل و نعمت و چقدر نعمتها و راحت كانوا فيها فاقرین که در اون اسباب راحت و در اون نعمتها خوش رزرانی می کردن کذالک یعنی الامر کذالک گونه شد و قوما آخرين و ما قرار دادن قوم دیگر قوم دیگری آمد و وارث بني اسرائيل شد این قوم دیگر کیه که کی وارث بنی اسرائیل به وقتی وارث فرعونیان شد وارث فرعونیان شد این قوم دیگر کیه؟ بسیاری از مفسرین میگویند که اینها بنی اسرائیل هستند چون در سوره شعر هست و اورس نبی اسرائیل وارث آنام کی را قرار دادیم بنی اسرائیل. اما بعضی ها اینو نپذیرفتند چون که میگویند ما در تاریخ نداریم که بنی اسرائیل برگردن به مصر اون چیزی که هم در تاریخ نیست و هم در قرآن نیست که اینها برگردن به مصر بلکه چی هست اینه که اینها وقتی که رد شدن از دریا رفتن به طرف شام رفتند چطور وارس اونها قرار داد؟ بنابراین بعضی میگن که قوم دیگری هست که خداوند در همون مصر زندگی میکرد قوم آخری مرد بنی اسرائیل اما بسیاری از مفسرین مثل اللامه اندلوسی، اللامه آلوسی این را به شدت رد کردن گفته وقتی که قرآن میگه وارسنا بنی اسرائیل شما چطور میگید نه قوم دیگر بودند؟ آیه دیگر قرآن این آیه را تفسیر میکنه اما این که شما میگید تو تاریخ نیست خب تاریخ هیچ وقت برای ما ملاد نبوده و نیست شاید برگشتند شاید برنگشتند. ما با این بخشش کار نداریم ولی چون قرآن گفته که وارث اونها بنی اسرائیل شدن پس وارث یه بنی اسرائیل ببینید علامه علوسی نوشته علامه اندلوسی نوشته ان بنی اسرائیل رجعوا الى مصر بعد هلاك فرعون بعد هلاکت فرعون بنی اسرائیل کجا شد برگشت به مصر هرچی که نیازش بود برداشت و بعدن رفت به شام خب از کجا اینا گرفته تو تاریخ نیست بلکه از همین که قران گفته و رفتن بنی اسرائیل از این گرفته علامه ابن كسير مفرمايت ولا اعتبار بالتواريخ تاريخ اعتباري نداري فالكذب فيها كثير وكلام الله صادق دروغ في تاريخ زيادة تلام خدا راستكي ميجئنا وورثنا بني اسرائيل قال تعالى في سورة الشعراء كذلك وورثناها بني اسرائيل انهم ابارتب اللهم عندل السيبو بحر المحيط وقالوا لا اعتبار بالتاريخ تاريخ اعتبار ندار و كذا الكتب التي بيد اليهود اليوم كتاب که امروز بدست یهود اعتبار ندار لما أن الكذب فيها كثير دروغ زیاد وحسبنا كتاب الله وهو سبحانه مستقل القائل اما ببینید بعضی دیگر از مفسرین معاصر یک تطبیقی بیان کردند که اینم خالی از لطف نیست به ذهن مین چیند اون اینه که بنی اسرائیل وارث شد همونطور که قرآن گفته و اورسنا بنی اسرائیل اورسنا بنی اسرائیل قوم ناقری مراد بنی اسرائیل حرف قرآن درسته. اما وارثی چی شد اینکه بی آیت در مصر و مصر حکومت بکنه چنین چیزی, چیزی نداری و لازم نیست که وارث همون تخت معین وارث همون باغ همون نمیدونم امکانات بلکه وارث شد از این جهت که قبلا قدرت با فرآن بود قبلن حرف اول را فرآن و فرآنی ها می زدن قبلن حکومت دارای حکومت اینها بودن بعد از اینکه اونها را خدا حلاک کرد حالا بنی اسرائیل را خداون اون جایگاه داد عزت مال بنی اسرائیل بود وارث بودن در همون بلاد خاص نیسته وارث بنی اسرائیل شد یعنی جایگوزین فرعونی ها بنی اسرائیل شدن حرف اول را این زدند، زدن حکومت این تشکیل دادن و و الاخرین خب شما اطراز بیم که حکومت تشکیل نداده این رفتند رفتن در میدان تی شدند، شدن سرگردان شدن درسته این حرف موسی را قبول نکردن، موسی علی السلام، حارون علی السلام در همون میدان تی وفاد کردن، اما بعدن پیغمبر دیگر یا یوشع بن نون بود، یا حزقیل بود، چون اسم پیغمبرانشون اختلاف استشد. در کنار اون پیغمبر جنگیدند و بعدن به عزت رسیده، هم خدا بهشون قدرت داد، پادشاهی داد، داود پادشاه شد، سلیمان پادشاه شد، و هر جای دنیا حرف اول را زدند هر پادشاهی که تمرد می کرد او را پایین می آوردن و دین را تبلیغ کردند پس از این جهت وارث این زمین بنی اسرائیل شد اول فرعونیها بودند قدرت حکومت مال بود الان مال بنی اسرائیل شد به این معنی است نه که حتما به مصر برگشته باشد الان ای حال. فما بکت عليه مستماؤ و الأرض برآن آسمان و زمین گریه نکرد یعنی آسمان و زمین گریه نکرد معنیش چیه بعضی گفتن کنایه از بی هست هیچ چیز که برای آن پروای بعضی گفتن به معنی حقیقیه چون که در روایت ها می آید که در آسمان ورودی ها و دربهایی هست که از این ورودی ها برای مؤمن کاهر رزق یک مؤمنی مثلا هر مؤمنی براش درش تعیین شده هست از اون در از اون ورودی رزق از اونجا براش میاد عبادت هایش از اینجا به بالا میره دعاهایش از اینجا میره لذا وقتی که مؤمن می میرد اون قسمت آسمان معطل میشه چون اون رسل دیگه نمیاد اون دعا به بالا نمیره اون اعمال صالح نمیره اون زهد تقوی و پاداش اونها نمیره اون زمینی اونجا عبادت میکرد سجده میکرد کار نیک میکرد اخلاق خوب از خونش امیدار که اون سراسر برای پاداش و عجب بودن اون زمین محروم میشه لذا اون بخش از زمین اون بخش از آسمان گریه می کنن برای مومن که میمیره چون زمین و آسمان محروم می از اون خیر اما کافر وقتی می میره هیچ که برایش گریه نمی به این معنی است فما بکت علیهم السما و گر ینکت بر آنان آسمان و زمین و ما و منظرین و نگودن انهاکه انتظار ببخشید و ما کان موزل مهلت داده بشن مهلتی هم داده نشدن خب این امت دعوت بود که خداوند این گونه به این حال زار گرفتار گرفتارشان کرد بعد از اینکه اینا گرفتار شدند نوبت امت اجابت میرسد نتیجه اتباع موسی یعنی اے قریشی مکے ببینید اونهایی که موسی را نافرمانی کردن نابود شدن اونهایی که موسی را اطاعت کردن نجات یافتند از شما هم هر کسی محمد را نافرمانی بکنه نابود میشه هر کسی اطاعت بکند نجات می یابد ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین همانا ما نجاة دارين بني إسرائيل رأى أزابي زلتبار من فرعون ون أزابي زلتبار يعني أزابي فرعون أز فرعون أي واقعا من جهة فرعون إنه كان عاليا من المصرفين همانا اون فرعون سرکش بود متمرد بود از متجاوزین و مشرکین بود و لقد اخترنام على علم على العالمین همانا ما انتخاب کردیم بری اسرائیل را بر علم با علم, علم, علم دانسته بر همه جهانیان جهانیان اون روز ببینید همه اینها با اصحاب و یاران تطبیق داره. و آتینا من ال آیات ما فیه بلاغ مبین ما به انها دادیم از آیات ببنی اسرائیل آن چیزی که در آن بلاغ مبین بلا دو معنا دارد یک معنای بلا هست امتحان و یک معنی دیگر بلا نعمت یعنی خداوند می فرمان ما به آنها چیزهای دادیم که باعث امتحان شما شد شد یعنی که به آنها نعمت بخشیدیم بلاغون مبین نعمتون ظاهره تفسیر مداری بنوشده او اختبار ظاهره امتحان ظاهر، لننظر کیفر یعملون پس ما انها را اخت... اه... چی کردم برگزیدیم و دادیم از آیات اون چیزای که در آنها نعمت سریع بود یعملون این ها خب این نمونه برای اهل مکه بیان شد که اهل مکه بیترسند اهل مکه رسول الله را اطاعت بکنند اما ببینید اهل مکه چیکار کار کردند اینجا زاجر رو سرزنش است برای اهل مکه و التفاق است بسنی اهل مکه این ها اولئی لیکولون همانا انها میگوین این یا ایلا موتتنا الاولا نیس این مگر موت اول ما وما نحن بمنشهیم وما حشر نمی شویم زنده کرده نمیشیم از قبر اگر راست میگی زندگی هست اول پدران ما را زنده کن فتو با ابائنا کنتم صادقین بیاور پدران ما را اگر راست میگی اگر راست میگی میفهمد اهم خیرون ان قوم, با قوم, داشتا خدا قوم, قوم تبع بقوم التوباء عشان اعيدها عشان خداوند میفر اینا بهتر از قوم تبع مراد از قوم تبع تبع حميري هست اولا لقب پادشاهان یمن چی است؟ طبع است همونطور که پادشاهان جای دیگه هریکی یک لغبی دارد ایران کسرا، روم قیصر، مصر فرعون و حبش نجاشی مال یمن طبع اما مراد از این طبع که اینجا آمده اسعد ابو کرب یمانی مراد است این اب اسعد ابو به مکه مکرمه آمد برای تواق از یهود و به مدینه رفت از یهود شنیده بود که رسول الله پیغمبر خاتم هجرت میکنه اینجا میاد این طبع اون زمان خیلی زمان پیش از بیست رسول الله و ولادت رسول الله همون زمان ایمان آورد به اولادش توصیه کرد گفت ای فرزندان من این پیانبر که بیاد من بهش ایمان دارم من او را قبول دارم شما هم به او ایمان بیا برید. و قومش را توصیحای خوبی کرد اما قوم نبذید قوم بعد از او عمل نکرد راه سرکشی و تمرد را اختیار کرد خداون حلاقشون کرد عذاب برایشون آورد تفصیل نیست فقط از این آیات معلوم میشه خداوند گرفتارش کرد بعضی گفتن توبه به این معنی هست که مطبوع هستم و تابعان زیادی، پیروان زیادی، کسانی که دنبال روشن باشن زیاد است آیا اینها بیتنی قوم الطبع والذینن قبلهم و کسانی که قبل از قوم الطبع بودن یعنی آد و سمود اهلکناهم ما همی را چرا؟ کردن چرا انہم کانو مجرمین همانا آنان جرائم پیش بودند مشغول جرم بودند گناه بودند لذا ما حلاق کردیم این ها را هم ما حلاق می کنیم. و ما خلق نصد سماواتی والارد دلیل عقلی توید بعد از اینکه نمونه های تخفیف گفته شد و برای مشرکان تخویف بیان شد بعد دلایل عقلی چه رب به مهربانیه ای دلیل میاره که اینا قانه بشن قانه نمیشن تخویف میاره بیترسن دنیای میاره اخری میاره بس قرآن مجید هدفش اینه که مسئله را مخاطب بفهمد حال دلیل عقلی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما نیا فریدیم آسمنها و زمین وما بین انها را بیهوده بیهوده نا برای حدث یا فریدیم ما خلقناهما الا بالحق ما نیا فریدیم اندرا زمین و آسمن را مگر بحق یعنی برای اظهار حق برای اینکه حق را ناسید خدا را ناسید هل من خالق غیر الله غیرس خدا نیست کسید بس حق ظاربیش و حق مراد توبید لو اردنا ان نختخل اللهم و ان لاتخذناهم من لدننا بیهودی نیا فریدی اگر هدف ما بیهودگی بود اکارمی کارمی کارمی بیش خود من کسی دید متوجه ناشید ولكن اكثرهم لا یعلمون اما اکثر شد نمید بس وقتی که حالی شنیس متوجه نمی شمان خدا مند باس تخویف بیان اخربی و وعید اخربی هم هم روز فیسل وعده همگی هاس میعاد همگی تمامی هاس, هاس لا یغنی مولا عن مولا شيئا روزی هست که دف نمی کند هیچ دوستی از دوست دیگر چیزی ولا هم یون و اینکه دوستان یاری نمی شوند نهی شفاعت است، شفاعت قلب و اینکه دوستان یاری می از طرف عالیه مزوما، الا من رحم الله مگر آنی کی آن کسی یاری میشکه خدا برو رحم کند. خدا بر کی رحم می کند کی رجای می کند شما خاندی در آیات کوچشته این نالان سر و رسولان و اللهین آمنه فی الحیات الدنيا و يوم يقوم الاشعاع خدا من یاری می رسول را و پیر وان رسول را و اللهین پس الله می فرماید اِلاَّ مَرْحِمَ اللَّهَ بَلْ تَفْسِيرِ الْلاَّ مَرْحِمَ اللَّهِ شَرَبُ كُنِيل که کسانی که در ان الله ناصر رسولنا بیان شدن این هو العزيز الرحيم. ہمارا اون ذات غالب هست. ارکار میکنه این صفت ترغیب است. الرحیم مهربانم هست صفت ترغیب است. یعنی اگر توبه نکنی مؤاخذه میشی اگر توبه بکنی با بر تو لطف میکند. ان شجره الزقوم ادامه تخویف وقربی. اینها چه غذایی میخورن؟ این شجرت زقوم همان درخت زقوم طعام الاثیم طعام گناهکاران است گناهکاران بزرگ یعنی کافران کلمه یغلی فی البطون اینو انسان می خورد زقوم درختی هست که در جهنم هست خیلی خارهای بزرگ ادارت و برنده ادارت و هم بسیار تلخست که از گلو اصلا فرو نمی رود ولی اینقدر گرست میشوند شوند جهنمی ها که می خورن مجبور میشن وقتی که بخورند از گلویشون پایین نمی وقتی که پایین بره روده و میده و همه را سوراخ می کنند لذا الله می فرماید کن المحل یعنی فی البطول محل یعنی فلز گداخته شده سرب گداخته شده مثل فلز گداخته شده و سرب یغلی فیلگتون جوش میزنه در شکم در شکم می جوشد و به اصطلاح عامیان غلغل می کند کغلی الحمیم مثل اون غلغل جوش آب جوش آب جوش چطور؟ از کنم که می جوشد این همین طور همین در شکم و در معده انسان از یک طرف تلخ از یک طرف خار داره از یک طرف آتش الله نجات این مجرمی که این را میخورد، بعداً بعدا به این بسنده نمی خدا می هنوز کشش بینید تو جهنم خدوهو فعتلوهو بگیرید ان را بکشید ان را فعتلوه یعنی فجروهو بکشید ان را الی سوائل جهنم تا جهنم تا جهنم این را ببرید فما فوق رأسه من عذاب الحمین سپس بالا سرش بریزید از عذاب حمین یعنی آب جوش این همه تو آتش سخته بس نیست آب جوش هم روش میریزن و بعد به این عذاب های مختلف گرفتار میشه از پاین آتش از بالا آتش و از بالا آبجوش ذوق به این گفته میشه بچش یعنی ذائقه و تعمینا رو بچش اِنَّكَ انت العزيز الكريم همان تو در دنیا تمسخورن بهش گفته میشه تو معزز بودی با شخصیت بودی غالب بودی یعنی که اینجا اینجا تو برای ما احترام داری تو با شخصیتی مکرمی اینها را استهزان بیش میگویند این ها را ما کنتم بهی تمترون همانا این جهنم اون چیزی هست که شما نسبت به این شک داشتید شک داشتید الان ببین واقعیت داره یا نداره این المتقین فی مقام امینه بعد از اینکه که عذاب جهنمی ها بیان میشه درباره باره متقین و اهل تقوی بعد از تخویف بشارت اما نکسانی که متقین هستند این را یاداوری بکنم در تمام قرآن دقت بفرمایید هر جای قرآن مجید تقوی بهش بعد تقوى خورته. إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات النعيم هر جبهش تقوى بدون التقوى نمش فس خدا وان بفهمات إن المتقين في مقام أمين إنساني تقوا دارم، تقوا را هم تفسیر کردیم اصل تقوا به معنی اجتناب، به معنی دوری اجتناب از معاصی، در رأس معاصی شرک و کفری، نفاق بعد بیا پایید دارم بس کسانی که اهل تقوا هستند و اهل پرهیز و پرهیزگاری هستند فی مقام امین در جایگاه امنی هستند چطور ام؟ آن کلی ما یخاف و يكره. از هر چیزی که انسان می تسد و نمی پسندد، از همه در امان هست. فی جنات و عيون در باغات و چشنهزارها هستن. یلبسونم سندوس و استبرق متقابلین. اینها می پوشن از سندس سندوس ابریشم را می گویند، اما ابریشم نازک. من سندسن ما رق من دیباج اون ابریشمی که رقیق و نازک باشد و استبرقین و ابریشم زخیم استبرق ما غل و زمین ہو اون ابریشمی که زخیم باشد متقابلین روبروی هم نشسته اینها در دنیا برای مردها ممنوع هستن اونجا احکام نیست اونجا می میبوشن متقابلین روبروی هم کذالک وزوجناهم بحور العین ای الامر کذالک معامله این چنین هست وزوجناهم بحور العین ما انها را جفت می کنین بحورهای کی عین چشمهای درشت دارد حور بمعنی چهره زیبا و سفید ناشتن بین خاطر اونها سفید و زیبا هستن انها حور می این بخاطرین که چشمائی پاویی و چشمائی دروش دارند یدعون فیها بکل فاکهت آمینین این اهل بهشت که در بهشت هستن می هر میوی را ایمن انجا هستن هر میوی که دلش شمی خاد می خانند لا یزوکون فیها الموت نمی چشن در آن مر را الا الموت تال مگر مرگه اول مرگ دنیا و وقاهم عذاب الجحیم خدا من انها از عذاب جهنم حفاظت بی فرماید فضلا من ربکا این علت اصلیه و جب ما کنتم تعملون شما خاندین ارض کردم علت مجازی و سبب مجازی این سبب حقیقی این همه نعمتاره که خدا اتاو فرماید فضلا من ربکا فضلی هست از جانب رب تو ذلك هو الفوز العظيم این هست فقط این فوز عظیم و رستگاری بزرگ منفذیلت جنت رستگاری بزرگ این هست فانما یسرناه بلسانک لعلم یتذکرون در پیام خدای عزوجل درباره قرآن و این حکم حکمنامه بیان می فرماید ای محمد صلی الله علیه و سلام این قرآن را ما آسان نازل کردیم به زبان شما یعنی به زبان عربی لعلهم یتذکرون ببین کار خدا نازل کردن کار بندگان خدا لعلهم یتذکرون پند گرفتن تذکر گرفتن و عمل کردن به قرآن فرتقب این هم مرتقبون در پایان هم جمله جمله تخویفیه هست بیم میره مشرکان را اگر اونها باوجود این بازم قبول نمیکنن فرتق منتظر باش این هم تقویف هم تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم منتظر باش این هم مرتقبون اونها منتظر هستند یعنی فرتق اگر تسلیم نشدن اگر ایمان نیاوردن اگر, اگر نفزی رفتن منتظرشان باش اي قال الله تعالى مسليا لرسوله وواعد له بالناس انجا تسلیم ده وواعده نصرت مده ومتوعدا لمن كذبه مشرکين رسول الله را تكذیب کردن انهار وعید مده بالعطب والحلاك بالنبوده وحلاكت فرتقب انهم بس منتظر باش انها هم منتظر هستن کہ چی بار سر شمی خدا خدای عز و جل بیعذاب گرفتار صدق الله العظيم